خب بسم الله الرحمن الرحیم شروط المسنه شرط های مسنه یعنی اینکه ما هر کلمه ای رو نمیتونیم مسنه شدرست کنیم شرط هایی داره چی داره؟ امسلور دقت کنید چهار تا مثال آورده اتفق شریکان خب ترکیب همشون فعل با فائل هست اتفق فعل مازی مبدی برفت از شریکان فائل مرفو با چون همشون مسنه هستن ربح التاجران عاد المسافران نجح العليان <تصفيق> عليان اسم على شو يا عليان عليان خب عليان ا القواعد القواعد قاعده خيلي سعادهي دار بحث مصنح شرط هست شرط هست در کلمه ای که مسننا میشه این یکون مفردن یک کلمه چی باشه مفرد باشه کلمه خودش چی باشه یعنی کلمه مسننا جمعه نمیشه دوباره چیش ببندی مسننا و معربن شرط دوم این هست که چی باشه مبنی رو نمیشه مسند مثلا شما نمیتونید حل رو اینه رو اینا انت اینا رو چیکار کرد مسند است چرا چون مبنی است سنجاست بس شرطش اینه که مفردن مفرد باشه معربن دیگه چه باشه شیخ سهیل معرب باشه غیر مرکب مرکب هم نباشه حالا این مرکب چی مزجی باشه چی اسنادی فرقی میکنه مراکبی رو نمیشه مصنّع است. مانند اردشیر که از دو کلمه درست شده است یا جادل الحق که در کتاب آورده است بله پس غیر مرکب اونی که می‌خوای مصنّع کنی غیر مرکب باشه مرکب نباشه مرکب نباشه له مماثل فی لفظه در لفظ مثلی داشته باشه مثلا زید ما میتونیم ببینیم زیدان چون دو تا زید میتونه وجود داشته باشه آره یا دو تا کتاب یا دو تا قلم ولی ما یک ستاره‌ای در دنیا داریم فقط به نام سهيل سهيل دیگه ای نداری دیگه نمیشه این سهيلو چکار کرد سهيل ستاره رو مسنعه باشه پس له موماسلون موماسلی داشته باشه اون کلمه که میخوایی مسنناش ببندی چی داشته باشه؟ مماثل یعنی مثل خودش یکی داشته باشه در دنیا فقط یکی نباشه در دنیا فقط یکی؟ مثل ستاره سوهل نباشه ستاره که فقط یک تا؟ یا در معناه یا در چی؟ در معنا هم یکی باشه مثلا شما اگر عین <تصفيق> ما این داریم به معنی های مختلف یکی ان به معنی چشم هست یکی ان به معنی چشمه که هست خود تو اگر میخواستی اینا رو مصنع کنی منظورت عینان بگی منظورت یکی عین چشم باشه اون یکی دیگه چه باشه نمیتونی این زیاد مصنع درست کنی اتای چه شدی؟ یکی عینان دو عین یکی منظور عین چشمه یکی عین چشم چی؟ <تصفيق> بله پس این شرایط مصنه بودن که خیلی ساده بودن شرطه اشین که مفردی باشه تا اونو به مصنه ببری مغرب باشه مبنی نباشه غیر مرکب مرکب نباشه کلمه مرکبی نباشه و مماثل داشته باشه در لفظ و معنا و داشته باشه؟ در لفظ و معنا سد و فنجه مهمین قائده یل حقو بالمفنه فی اعرابی پنج کلمه به مسننا ملحق می در عرابش ملحق به مسننا میشوند در ایرابش پنج لفظ و اونا چه هستن؟ اثنان، اثنتان، ثنتان، کلا و کلتا این پنج تا مضافتین الى الزمیر کلا و کلتا هم همیشه مضاف به باشن؟ به زمیر باشن بله جا الرجلانی کلا هوا جاء امرأتانی کلتا هما کلا برای مذکره کلتا برای موننس این هایسا مسننه هستن یعنی در حالت رفت الف میگیرن در حالت نسب جر یا میگیرن جاء ردولانی کلاه هما رأیت و ردولینی کلاه هما ای رو دارن ولی مسننه نیستن تون لفظ مفرد ندارن تون لفظ مفرد ندارن این بود شروط مسنا بریم در درس بعدی شروط جمع مزشکر سالم